سروران من درس دوی که مرتبط با درس قبلی است طریقه تأکید فعل رو در این درس کار می کند؟ در درس قبلی گفت ما چه زمان تأکید بکنیم و چه زمان تأکید نکنیم در این درس توضیح می دهد که به چه شیوه ما منظور این است که اگر نون تاکید بر سر فعل مزارع اومد چه تغییراتی رخ میدهد؟ به چی شیوه آن رو بیاوریم؟ قو... قواعد به شکل کامل در این درس بیان شده اند اول امثله رو میخونیم سری سری بعدا قواعد رو تطبیق میدیم با امثله این بهترین شیوه نیست به از نظرتان؟ از نظر فکری همین خب رو تصبرو, تصبرو، نیست بانون تاکید سقیله اما در مثال دوم انتا نه انت؟ لتصبرانه انتما تصبرانی لتصبرانی در این قسمت الف فعل سالم هست اما با قسمت ب و جیم و دال همشون ناقص هستند چرا برای مثال یک گروه ها ورده برای موتل ستا به خاطر این که موتل یایی با واوی با الفی با هم فرق دارند زمانی که نون سقیله بر سرشان همانطور که البته بدون نون تأکید هم با هم فرقهایی دارند بدون نون تأکید هم با هم مثل سالم نیستند که تمام سالم ها مثل هم صرف بشن خب انت تصبر لا تصبرن انتما تصبران لا تصبران انتما تصبران تصبرنا لا تصبرن انت تسبرين... تسبرين... تصبرين لا در مخاطب مفرد مؤنث مخاطب وجمع مذكر وجمع مذكر زمانی که نون تأکید ثقילה بیاید واو و یا مخاطب حذف می شوند واو و یا مخاطب چی می شوند اینو البته در قاعده میگه ما فعلا به خاطر این سری سری رد میشیم که بعدا تطبیق دهیم قسمت با انت تقضی انت تقضی لتقضیننا لتقضیننا أنتما تقضيان أن تنا أن تنا تقضينا لتقضينا لي أنت تقضينا لتقضينا أنتم تقضونا لتقضونا أمثلة جروه لتدنو ون. اینجا اول جمع محنس رو آورده بعدش جمع مذکر رو در مثال های دیگه اول جمع محنس رو می آورد بعدش جمع خب مشکلی نیست انتون تدنون لتدنونانی انتی تدنین لتدنین انتم تدنون لتدنون گروه همسله دال ترداء أنت ترضى لترضيننا أنتما ترضيني لترضيني أنتن ترضين لترضيناني أنت ترضين لترضيننا لترضينا أنتم ترضون لترضوننا القواعد قائدية سيوهشت كتاب إذا أكد المضارع بالنوني زمانی که مزاره با نون تأکید شود جرت علیه الاحکام الاتیه احکام زیر برو اجرامی شوند الف یعنی در قسمت 38 چندین قاعده رو زیر یک قاعده یا چندین زابطه رو زیر یک قاعده قرار داده است بهتر است بگوییم. چون شما در کتاب قواعد فقهی میخوانید که فرق قاعده با ضابت چی هست؟ خب بریم جلوتر تحذف ضمة الرفع او نونه یک یا علف زمه رفع ذمه که علامت رفع است یا نون اعرابی هست می شوند مثلا در تزریبو میشواد لتزری بنه ذمه هست شد در تزربونه نون حسد می شاد می شاد لتزربونه پس یک یه علف تحذفو ضمتو رفع نونهو منظورش شو فهمیدید با مثال توضیح دادم؟ با المسندو لضمیر المستتری اون فعل مزاریک مسند به ضمیر مستتر هست معنید زیدون یزربو یزربو مسند به ضمیر مستتر هو هست دیگه نه؟ او اسم ظاهر یا مسند به اسم ظاهر هست مانند یذری بو زیدون یفتح آخره آخرش چی داده می شود؟ اول اسم زمیر و ظاهر می فرماید فعل مزاریک مسند به زمیر مستتر باشد یا مسند به اسم ظاهر باشد مانند یذری بو زیدون اینجا فایلم ما چه هست؟ اسم ظاهره دیگه زمیر نیست فهمیدید؟ اسم ظاهر مثل یعن سرو علی جون اینجا فعل مسنده به اسم ظاهری شده مسنده به چی شده؟ بله می زمانی که فعل مزاره مسنده به زمیر مستطر یا مسنده به اسم ظاهر باشد زمانی که نون سقیل به آن بچسبد زمانی که نون تأکید بچسبد یفتهو آخروهو آخرش فتحه داده می شود اینا چند سیغه هستند بله پنج سیغه هستند یک یزره بو دو تزره بو سه تزره بو کچون تکراری هستن یکی حسابشون میکنیم ازره بو نزره بو بو این سیغه ها منظورشه زمان کنون تحققید بر آخرشون بیاید آخرشون فتح میگرد اسم ابی بر فاطمه میخوان لا یذری بن لا تازری با چی گرفت که آخرین حرف بود فتحه همین قاعده همین چیزو داره میگه و تو قلبو البته این در سالم ها بود بعضی از ناقص ها کی که... میگم بعضی از متل ها همون ناقص باشد که الف دارن مثل تردا مثل چی مثل تردا زمانی که نون تأکید برش بچسبد سروران من الف تبدیل بیا می شود و تقلب و الف ناقصی فیهی یا ان و الف ناقص تبدیل بچی می شود مانند تردا اگر تأکیدش کنیم این سیغه ها همه این پنج سیغه اون موقع الف تبدیل بچی می شود مانند لیردا ینه مانند چی؟ لا یارضاین نه، لترضاین نه، لارضاین نه، لنارضاین نه. فهمیدیت؟ با آره فهمیدیم گری. ولی الف پس این شماره که هم خیلی ساده بود. اما جین المصنو لالف ال اثنینی تكثر فیهن نونث سق... این هم یک چیز بسیار ساده و البته در این حال مفیدی هست می فرماید زمانی که فعل مزاره مصنده به علف مسننا باشد یعنی سیغه های مسننا یعنی زربانی تزربانی تزربانی تزربانی تا سیغه دیگر دو... یکی دوتاشون غایبند دوتای دیگه چه هستند؟ حاضرند دو... یکی مال دوتا مال مزکرند و دوتا مال مونس میشن چهار تا این چهار سیغه المصنده لی علف اون فعل مزاریک که به علیف ایس هست تو و فیه نون نون درش نون سغیله درش کسره میگیرد بله اینجا دقیق بفرمایید نه در این سیغه نون خود نون چه حرکتی دارد اما در مصنده ها کسره دارد لیزریبانی لتزریبانی متوجه شدید این شمار قسمت جیم قاعده سی م رو متوجه شدید دیگه اما قسمت دال قاعده سی و هشتوم زمانی که نون جمع موننس بیاید اینجا هم دقت بفرمایید تفصیل و فیهی الیفون بین نونین اینجا دیگه نون جمع موننس حصف نمیشه چون نون جمع موننس با نونای دیگه متفاوت هست این نون زمیر هست ولی اون نونا نون اعرابی بودند اونا حصف میشدند مثلا در یزربانی موقعی که ما نون سقیل رو میاریم خود نون یزربانی چی میشه؟ هست میشه همانطور که زمه در اون پنج سیره هست میشد ولی این نقطه را بدانید اگر نون جمع موننس ما برش نون تحکید بیاریم نون هست نمیشه پس جمعه میشن چل تا نون؟ جمعه سه سه ست. تا نون برای این سه تا نون خونده نمیشه یک علفی بین نون موننس و بین نون تحکید میاریم که بهش میگن علف فاصل مانند یزربنه و تزربنه میشه لیزرب نانی لتزرب نانی فهمیدید بین دو تا نون که این روزها گیر نمی آید چه اومد؟ بله بریم جلوتر خب بریم جلوتر آه پس آه اگر دقت بفرمایید المسند لنون نسوتي تفصیلو فیه الیفون بین النونین مسند اونی که مسند شده به نون جامع معنس بین دوتا نون چی می فاصله می الف ولا و لا تکون الا سقیلتا مکسورتا و این نون سقیلی که روی جامع معنس میاد آید همیشه کسره دارد همیشه چی دارد؟ لا لا یزرب نانی لا تزرب نانی قسمت ها قاعده شماره سی مصند الاء المخاطبتی او وول جمعاعتتی ت حظف فی الا و والواف. اونی که فعل مزاراریک مسط بیای مخاطب شود یا مخاطب فقط در یک سیقه داریم. مفرد، معنس مخاطراطب تذریبی یا یا و ذریبون و تذریبونه میفرمد تحذف فيه و فیی اللیا و والواف یا وواف میشان؟ حذف می شوان. در تزری در تزریبی نمی شود لا تزری بن لا در تزریب نمی شود لا تزری بن پس اینو تشخیص بدیم در قران جای زیادی اومده این سیغه هاییونه اونی که ذمه داره جمع مذاکره، اونی که کسره داره چی داره جمع مؤنث بله مفرد مؤنثه مفرد مؤنث خب پس فل مزاره زمانی که مصند بیای مخاطب یا واو جماعت باشه و نون تحکیل سقیل برون بیاید و نون سقیل برون بیاید چون خفیفه هم بیاد همین حالتو میگیره واو و یا چی میشوند؟ مثلا با نون خفیفه مثال شی نهد بین لتزر بون لتزر بین نون, نون خفیفه رو مسنها دیگه نمیاد خب بریم جلوتر الا في المعتل بالالف يك استثناي آورده مگر اون معتل الفی مگر معتل چه الفی <تصفيق> در معتل الفی در معتل چه معتل واوی نه معتل یایی نه فقط معتل الفی در معتل الفی بله که الف تبدیل بچی میشد، بیام میشد، فتبقى یا المخاطبة مکسورة یا اینجا حس نمیشه بلکه مکسور باقی میماند و واو جماعت هم حس نمیشود و واب هم حس منده لتربين له لتر بله ت نه که ببینیم یا حف نشد بله و تق نه و هم هست اما در تقضی که هست یا هست میشه و هم هست میشه. مثلا یا مانند تقضینا که میشد ت نه دیگه نمیشه تق نه. بلکه یا هست میشه میشه لا نه و در درجه مذاکره میشه لا نه نمیشه لا تقضون نه میشه لا نه واضح هست میشه چون یاییه یقضی یقضی هست؟ یایی <تصفح> هست اما یا ترداچ هست یردا علیفی هست فقط در ها فقط در چی در علیفی ما گفتیم هرگاه فعل مزاره مسند به واو و یا شود یای یا مخاطب وا و یا حث میشوند وا واتی میشوند مگر در ناقص الفی مگر در ناقص در ناقص واوی حث میشه مانند تدلو میشه لتد نه در مفرد مؤنث مخاطب و در جمعش میشه لتدنون نه لتد ننه لتاذ فقط در الفی اون هم که الف خودش تبدیل بیا میشه مثلا تربا میشه بعد از این که نونس قیله بیاد میشه لترده یا نه و در این سیغه ها هم یعنی مفرد مؤنس مخاطب و جمع مزکر چه غایب چه حاضر یا واب هست نمیشون میشه لترده یا نه در مفرد مؤنس مخاطب و در جمع مذکر غایب میشه لیرده و نه و در جمع مذاکر مخاطب میشه لترده و نه رو فهمیدید ولی اینو باید مرور کنید خب حسنه نشده دیگه اون هم فرقی نمیکنه. کنه ترابونه علیفیه بنده خدا ترابونه اصلش ترا هست اصلش چی هست ببینید دقت بفرمایید ترا هم ناقص هم محموز هم ناقص هم چه هم محموز اونی که چرا حمزش هست شده اون بحثش مربوطه به محموزه بعدش میاد این ناقصه ولی ناقص الفی یا یا علیفی. علیفی. چون ناقص الفی هست زمانی که زمیر یا مخاطب به اون بچسبد یا زمیر واف جمع مذکر به اون بچسبد یا و واف حصف نمی شود برخلاف بقیه ها که حصف می شود. مثلا در بونه زمانی که تاکید سقیله بیاریم واف حصف میشه. شود می شود لیزربونه شود لا اظری ب نه ولی در یاربونه در گردونه اگر نویس سقییل و بیایم وب هست نمیشه میشااد لاگردضون نه. دیگه این خیلی ساده هست. والله است فهمیدی؟ خب. ۳39 امر که مبارقی عت توکیدی امر مانند مزاره هست هنگام تاکید اینگه واض است ب... اصلا امر از مزاره درست میشه شما همون سیغه هایی رو که تا سیغه رو آورده بود تردا ترده یا نی ترده نه ترده نه ترده نه شش سیغه چطوری نون سقیله بر مزاره می اومد به چه شکلی در می اومد بر سر مزار بیاد به همون شکل در میاد بر سر امر بیاد پس امر از مزاره ساخته میشه و همون حالت رو داره و تغییری درون آید. درس بعدی شما آید و سوادی هست که الان به ازن الله اون رو واضح خواهیم گردانید